بسم الله الرحمن الرحیم فضل الله تقریبا نیمه های کتاب تصریف و زنجانی رسیدیم بحث امروز مضاعف هست فصلون فیلم ضاعفی فصلی در رابطه با المضاعف و یقالون له الاسم به آن اسم گفته میشه معنی اسم به فارسی یعنی ناشنوا میگویند از آن جایی که نیاز هست برای ناشنوا صوت تکرار بشه در مضاعف هم حرف تکرار میشه مضاعفونه که یه حرفش دوبار تکرار شده و یقالو له الاسم و هو من الثلاثی المجرد و فيه و مضاعف آنف که الثلاثی مجرد و مزید فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد ماتقی عين الفيل ولام الفعلش از یک جنس باشن در سلاسه مجرد ومزید فيه عين الفيل ولام الفعلش از یک جنس باشن كالرده واعده. معانا من دررده واعاده رده مجرده اعاده مزید فيه خب دررده دوتا دال داریم در اعده دوتا دال داریم پس الرده مره کره فره عمه اینها مزاحفند چون آینه الف و لام یک حرف است. حالا همیناراگر مزید کنیم سر جشن باز هم مزاحفت شدده رو فرضن به بابش تدر باید. فاينه اصل هما همانا أصل عنده فعل يعني رد وأعده رده وأعده بوده ومن الرباعيه هلو ان تعريفه سلاس يشبود أما أز رباعي ما كان ولا ولامه الأولى من جنس واحد وكذلك أينه ولامه الثانية أز رباعي مضاعف أونس كفاو الفعل ولام الفعل أولاً از يك جنس و همتون این عین و لام الفعل دوم از یک جنس باشند در ربایی ما چهار حرف اصلی داریم مانند زلزله عسى وس وسه. خب در زلزله زای اول بهش میگن فاء لام اول بهش میگن عین الفعل زای دومی بهش میگن لام الفعل اول لام دومونیش میگن لام الفعل دومی پس در رباعی چار حرفه اصلی داریم حرف اول رو میگن فاعل فعل حرف دوم رو میگن عین الفعل حرف سوم رو میگویند لام الفعل اول حرف چهارم رو میگویند لام الفعل دوم در تعریفی که اینجا آورد میگه رباعی آن است که فاعل فعل و لام الفعل اول یعنی حرف اول و حرف سوم یک جنس باشن عین الفعل و لام الفعل دوم یعنی حرف دوم با حرف چار یک جنس باشد. مانند ده زل زل، عس عس، وس وس. ویقال له المطابق ایمان. به مضاف مطابق همچنین گفته میشه. نحو زل زل، یوزل زل، زل زل این باب دو تا دارد. داری برای دار زل زل تنوزل این از تعریف. شد. وإنما ألحق المضاعف بالمؤتلات ملحق شده است مضاعف بالمؤتلات بحثش در بحث مؤتلات مياد كرا؟ كون إبدال كحرف اللي تبديل بحرف ديجي مشه حصف حرف اللي حصف مشه در مؤتلات رخمي ده در مضاعف هم رخمي خودش ميدي لأن حرف التبعيف يلحقه حرف همون حرف تکرار شده همون حرف هم جیمس یا لحقه ابدال ابدال درش میاد که قولهم املیتو به معنا امللتو مانند املیتو که لام امللتو لام دومی تبدیل بیا شده شده املیتو خب پس مانند املیتو که به معنی امللتو هست اینجا لام دومی تبدیل بیا شده پس در مزاعف ابدال روخ میده همانطور که در موتل رخ میده و الحف و در مزاعف حصف روخ میده همانطور که در موتلات روخ میده که قوله مالنده مستو یا مستو ذلتو یا ذلتو دو تا حرکت بشتاده به فتح الفا و کسرها بعدم گفته فتحه و فتحه فالفه و کسرش. یعنی هر دو تا رو میپذیره و احستو. پس مستو یا مستو اصلش بوده مسستو ول تو یا همون تو که هر دو حرکت جایزه اصلش بوده زلتو تو بوده تو. حصف درش رخ داده پس به این علت است که ملحقه به است والمضاعف يلحقه مضاعف ادغام بشمول هرم شه ادغام میشه و این ادغام در مضاعف سهالت داره یا ادغام واجب هست یا ادغام ممتنع ممنوع هست یا ادغام جایز هست ادغامو تعریف میکنه و هو ان توسکن الاول و تو درجه في الثاني. ادغامان است که اولی رو ساکن دهیم و در دومی فروش ببری. مدده دال اول رو ساکن میکنیم در دومی فرو میاریم مدده و یو اول و حرف اولی مدغم نامیده میشه در مدده دال اول میگن مدغم ادغام شده و ثانی مدغمان فی دومی مدغم فی یعنی درش ادغام شده فيه. فيه هر اول درش ادغام شده مانده مده داره دوم فی فیه نامیده میشه و اولی مدغ و داره که واجبون و این ادغام واجب است فی نحوی در امثلی یعنی منظور در این سیغه ها هر مزاعفی در این سیغه ها ادغامش واجبه مده ی مده سیغه اول مازی و سیغه اول مزاره البته این دخت رو الان عرض کنم که در ماضی پنج سیغه اول ادغام واجب است سیغه شش به بعد ادغام ممنوع است در مزاره غیر مجزوم تمام سیغه ها جز دو جمع مؤنث ادغام واجب است در دو سیغه ادغام ممنوع است یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر یعنی دود نه تم دود نه پس ادغام واجب هست در ماده مودو و همچنین در اون هایی که مزيد هست أعد اعد يعدو كباب افعال هست انقد ينقدو كباب انفعال هست اعتد يعتدو كباب افتعال هست اسود يسود باب افعل هست استعد يستعد باب استفعال هست اتمئنا يتمئل باب افعل هست تماد يتمادو باب تفاعل هست بس موقعی که به این باب ها برده میشه هیچ فرقی نمی کند یعنی مجرد به باب به مزیدها مزید ها که برده میشه ادغام درش رخ میده و شرط ادغام البته این شرط رو بدونیم که یکی از شرط هاش اینه که بین دو حرف همجهل فاصله ای نباشه اگر فاصله ای باشه ادغام رخ نمیده به همین خاطر است که در رباعی ادغام نیست زل زلا بین دوضافه فاصله هست و بین دو لان. و کذا این افعال اگر بنیته ل مفوت دیگه ای که ما ترجمه هست که زمانی که این فیلر مجهول هم کردی ادغام درشون واجب هست. نحو مده که مجهول مده هست یا مدو که مجهول یا مدو هست. و کذا نظائره و همچنین شبیه اینها یعنی هون مجهول هاشون مثلا استعدده اگر مجهول هم بشه ادغام درش واجبه و فی نحوی مدن مصدرند و مانند مد که مصدر هست یعنی های این مضاعف هم در سلاسی مجرد که فاصله بین دو حرف هم درس نیست ادغام واجب است خاطر این گفته بود و فی نحو مدن مانند مدن اما در استعدی یستعد استعداد اینجا دیگه ادغام نیست بس در چرا چون بین دو حرف فاصله اومد پس در کلماتی مانند مدن که مصدر حس هم ادغام واجب است و كذلك اذا اتصل بالفعل الف الضمير او واوه أو أو و هم چنین زمانی که به فعل ضمیر الف ضمیر واو و ضمیر یا بچسبد ادغام واجب است مانند مد مددا در امر مده مدو مدی این امر است ضمیر علف و واو و یا چسبیده پس ذواری که زمین الف و واو به چسبت اهدغام معجب است در ماضی مدت مد مدو مدت مدتا در این پنج سیغه معجب واجب است مدد تا مدد تمام مدد تم مدتی مدد تمام مدد تن مدد تو مدد, مدد, مدد, مدد, مدد, مدد, مدد لا اهدغام ممنوع است به دلیل اینکه زمینی که به رشش به بد هست زمیر بارز متحرک هست حرکت دارد ولی در مده اون سیغه هایی که زمیر ما زمیر بارزی ندارند زمیر مستقر دارند یا فایلشون اسم ظاهر است مثل سیغه اول مده یا مدت یا زمیرهای ساکنی بهشون وست شده مانند مده مددو اینجا دیگه ادغام واجب هست و ممتنی فی نحوه و ادغام ممنوع هست در امسله ایماننده مدد تو مدد نا مدد تا مدد تو ما مدد تو مدد تا نه و یمدد نه و تمدد نه در مزاره در دو سیغه فقط ادغام ممتنه است جمع موننس غایب البته مزاری چی باشه چه غیر مجزون امدد نه امر چون امر از مون مزاره گرفته میشه اصلا این مزارعه چه مجزون باشه چه غیر مجزون این سیغه جمع مونده است و چه زمانی که امروزش درست کنیم ادغام درش ممنوع است و لیمدود الوت این لیمدود اینجا اشتباهی نویشته لیمدود نه است ولا تمدود نه یعنی این دو سیغه جمع مونده است چه زمانی که مجزون هم باشن ادغام درشون ممنوع است پس چه سیغه های اتغای هست از سیغه شیش تا آخر فعل مازی در دو سیغه جمع مؤنث مزاره چه زمانی که مجزوم باشند و چه زمانی که مجزوم نباشند و همچنین در امر حاضر جمع مؤنث امداد نه و جایزون و ادغام جایز هست اذا دخل الجازم و على الفعل الواحد زمانی که جازمی داخل شاد برفیل مذکر فعل واحد در پنج سیغه مزاره مجزوم ادغام جائز هست یعنی ما میتونیم ادغام کنیم و میتونیم ادغام نکنیم سیغه اول مفرد مذکر غائب لم یا مدود میتونیم بگیم و میتونیم بگیم لم یا مدد لم یا مدد پس در سیغه اول زمانی که جازی میبرش آمده باشد ادغام جایی است میتونیم بگیم لم یم و دو ادغامش کنیم و میتونیم بگیم لم یم دو ادغامش نکنیم دیگه کدوم سیغه؟ سیغه چهارم مفرد مؤنث غائب لم تم دو میتونیم بگیم میتونیم بگیم لم تم دوت سیغه مفرد مذکر حاضر لم تم دو لم تم دوت که شبیه مفرد مونس حاضر هست الهازه لفسی بعدش اینا شدن تا در دو سیغه متكلم وحده و متکلم معلغیر لم امدو میتونیم بگیم ادغامش کنیم و لم امدود ادغامش نکنیم در متكلم معلغیر هم لم نمدو لم نمدود پس ادغام سه حالت داشت واجب ممنوع و جایز که همشون بیان شدند فا انکانه حالا یک نقطه ای دیگه میگوید میگه زمانی که ما اومدیم ادغام نکردیم در اون که ادغام جایزه مثل ادغامش کردیم مانند لم یا فر رو چه حرکتی بشودیم؟ توضیح بوده فا کار مکسور العین اگر اون فعل مزارم مکسور العین بود مانند یا فر رو فاکس ر داره او مفتوح الان یا عین الفل داشت مانده یا زمانی که جازم آوردیم و ادغامش آوردی نکردیم اینجا ما آخرشو میتونیم دو حرکت بدیم میتونیم بگیم لم یفررا میتونیم بگیم لم ری. زمانی که عین الفل کسره داشته باشه یا زمانی که فتحه داشته باشه میتونیم بگیم لم عبا لم یا کسر لامی و فتح ها لام رو میتونیم کسره بدیم و میتونیم فتحه بدیم این نقطه خیلی مهمیه زمانی که ما اومدیم در اون سیغه که ادغام جایزی هست و آوردیم و ادغامشو نکردیم چه نگاه اینولفل میکنیم اگر اینولفل کسره یا فتحه داشت اون وقت لام الفل دو حرکت میتونه بگیره میتونی فتحه بگیره میتونی کسره بگیره لمیعبا لم يتولى كسره بيغيره لم يا لم يعض لم يفر لم يفر واجر ماجروحكردیم که خب ساکن میگیره ولم يفرر ولم يغ يعض بفك الادغام بس در این سیقه که نام بردم ادغام جایزی است اگر ادغامش نکردیم که آخرش سکون میگیرد ولی اگر ادغام کردیم آخرش میتونه فتحه یا کسره بگیرد هر دو حرکت جایز است و هاکده حکم یقشع رو و یحمر رو و یحمار رو و همچنین هست حکم یقشع رو یحمر رو و یحمار رو اذا yani اگر ادغامش کردیم دو تا حرکت آخرشون میتونه میتونیم بگیم لم یقشع میتونیم بگیم لم یقشری لم يحمر لم يحمر لم يحمر لم و میتونیم ادغام کنیم لم يقشع رر لم يحمر, لم, يحمر لم يقشع لم يحما رر فممكن نيم ادغام كونيم و ادغام نيم لا كونيم. لم يقشع رير. وإن كان العيل من المضارع ما ضموما أجر إنه فلزم ما داشت فيجوز الحركات الثلاث مع الادغام إن جاء حرس حركة. جائز است اگر ادغامش کردیم البته و فكه و افکشم جایز است تقولون قالند میتونیم بگیم لم دو لم یمد لم یمد به حرکات دالی به حرکات سگانی که سر دال میان و اگر ادغامش نکردیم یعنی فک ادغام کردیم اون موقع آخرش ساکن میدیم لم یمد به فک ادغام و هاکذا حکم الامر و حکم امر هم چنین هست یعنی اگر ما اومدیم در مفرد مذکر حاضر امر سیخه امر ادغام نکردیم اون موقع حرکاتایی که تا اینجای کار دادیم میپذیرد. میپذیرد بگیم فر میتونیم بگیم فرری در امرش عبا عبی به کسر لامی و فتحه ها با کسر دادن لام الفل و فتحه دادنش در اون امری که مزارش بر وزن یفئلو یا یفئلو باشد به عبارتی دیگر مزاره این الفلش فتحه ها کسره داشته باشد که توضیحش رد شد یعنی امرش مثل مزاره مجزومش است. اون سیغاهی که ادغام درشون جائز یعنی yani میتونی سیم هم ادغام کنیم و میتونی سیم هم تکی ادغام کنیم و میتونی ادغامش نکنی بگیم و فرر در یا فرو امرش بگیم اف رر فرر فری در یا غض میتونیم بگیم غض اض و میتونیم بگیم اع دو دو در یه مدو که امرش میشه امدود اگر ادغامش نکنیم و اگر ادغامش کنیم میشه مده مدی مد مدو چون قبلا توضیح دادیم اگر این الفل کسره یا فتحه داشت لام الفل فقط دو حرکت میتونستیم بیدیم فتحه و کسره ولی زمانی که این الفل زمه داشته باشه مانند یه مدو اینجا دیگه هر سه حرکت رو به لاملف فیل میتونیم ببینیم ماده مادی مادو و میتونیم بگیم آم دوت پس و ماده به حرکات دال ماده دا مادی مادو بنظرش از حرکات دال همین هست که هر سه رو و میتونیم فکر ادغام کنیم و بگیم آم دوت و تقول فی اسم الفایل اسم فایلش میشه در اصل ماده ده وری ادغام میشه مادون مادانی مادونه مادتون مادتانی مادتون موادون اسم مفعول ادغام نمیشه چون بین دو حرف همجنس واوی میاد اسم مفعولش میشه ممدود منصور ماده اسم مفعولش میشه ممدود تا جای کار بحث مضاعف در یک درس مختصران توضیح دادیم اگر بخوام مرورش کنم ادغام سه حالت داشت جائز واجب ممنوع جائز در فعل ماضی در پنج سیغه اول ادغام واجب است مده مده مده مددو مددت مددتا سیغه شیش 6 بعد ممنوع است مدد نه مدد تا مددتو ما مددتو مددتی مددتو مدد ما مددتو نه مددتو مددنا در که رایکه متحرک بارز متحرک است ادغام مأمور است در مزاره غیر مجزوم ادغام در تمام سیغه ها واجب است جز دو جمع مؤنث یا مد دو مدانی مدوله که مدو تمدانی یمدود نه تمدو تمدانی تمدوله تمدین تمدانی تمدود نه اما دو نموندو فقط در دو جمله ممانس یمدودلا و تمدودرا مأملود در بقیه سیغه ها ادغام واجب بود ولی در مزاره مجزوم و امر در پنج صيغه ادغام جایز هست صيغه اول لم یمد لم یمدو لم یمد لم یمدی همین یک صيغه است ولی زمان که ادغامش نکنیم سه حرکت می‌پذیره پس لم یمدود میتونیم بگیم لم یمد لم یمدی لم یمد ادغامش هم نکونیم میتونیم با سه حرکت اگر بر وزن یفعولو باشد آخرش شب سه حرکت میدیم لم مد لم یا مد دا یا مدی اما اگر کسره داشته باشه اینو الفل دو حرکت بشه میتونیم بدیم زمانی که ادغامش نکنیم لم فرر لمی فری و اگر ادغامش نکنیم لم, لم فرر پس در حالت جایزی پنج دیغه سیغه مفرد مذکر لم یمدوت یا لم یمدو لم تمدوت یا لم تمدوت باز هم لم تمدوت یا لم تمدوت ولی این مول مفرد مذکر حاضر لم امدو لم امدوت لم نمدو لم نمدوت این پنج سیغه ادغام جایز هست در دو جمع ادغام ممنوع هست و در بقیه سیغه ها ادغام واجب هست یکی رو صرف میکنیم در حالت جذب لم يمدو لم یمدد لم یمددا لم يمدو لم یا لم لم تمدا لم یمددنا لم یا لم تمدود لم تمدا لم تمدود لم تمدی لم تمدا لم لم امدو یا لم امدد لم نمدو یا لم نمدد اون زیغایی که ادغام جائزی بود من هر دو حالت رو بیان کردم یک چیزی دیگه مون زمانی که جازم بیاد و ما ادغامش نکنیم در مزاره مجزوم اون زیغایی که ادغام جائزند همون پنج سیغه اگر ادغام نکردیم نگاه میکنیم اگر بر وزن یفقلو یا یفئلو بود دو حرکت لا ملفل میتونیم گیره فتح و کسره و اگر بر وزن بود مانند یف... یمدو چه حرکت میتونیم گیره اگر ادغام نکردیم سیغه ها رو لم یمدو لم یمد لم یمد این ها بحث های مهم مضاعف بودند موفق و پیروز باشید